قصه های هزار یک شب شب نوزده هم خلیفه به کشتن قلام سوگند یاد کرده به جعفر گفت که قلام را از تو می خواهم. اگر پدید نیاوری به جای او تو را بکشم جعفر از پیش خلیفه به در آمده همی گریست و همی گفت همه وقت سبو از آب سالم در نیاید اگر آن دفعه خلاص یافتم این دفعه کشته می شدم. که پدید آوردن قلام محال است القصه جعفر به خانه آمده سه روز به طاعت مشغول شد پس از آن قاضی را خواسته وسیت بگذاشت در آن هنگام حاجب خلیفه از در درآمد و گفت خلیفه بسی خشمگین نشسته و سوگند یاد کرده که اگر جعفر غلام پدید نیاورد امروز او را بکشم جعفر چون این بشنید بنالید و فرزندان و کنیزکانش بگریستند. جعفر فرزندان را یک یک وداع بازپسین می کرد تا اینکه دختر خورد سالی که از همه فرزندانش بیشتر دوست می داشت از بحر وداع در آغوش گرفته همی بوسید و همی گریست. در آن حال، به جیبندرش بهی دید. گفت ای دخترک این به از کجا آوردی؟ دختر گفت غلام ما ریحان دو دینار از من گرفت و این به به من داد. جعفر چون بشنید خورسند گردید و قلام را خواست. چون ریحان بیامد جعفر پجوهش آغازید. خلام گفت پنج روز پیش این به را در کوچه از کودکی بره بودم طفل گریان شد و گفت مادرم رنجور است پدرم سه دانه به از بسره به سه دینار خریده و آورده است من به سخن کودک گوش ندادم چون به خانه آوردم خاتون به را بدید و آن را به دو دینار از من بخرید جعفر چون این بشنید به خلاص خیشتن نشاد کرد و گفت اکنون که من از حلاک برستم حلاکت غلامی سهر خواهد بود. پس از آن غلام را به بارگاه خلیفه آورد و ماجرا به خلیفه باز گفت. خلیفه را عجب آمد. فرمود که حکایت بنویسند در خزینه نگه دارند که آیندگان را عبرت افضاید. جعفر گفت ایوال خلیفه از این حدیث تراشگی شگفت آمد و این عجیب تر از حکایت نورالدین نیست. خلیفه گفت چگونه است حکایت؟ جعفر وزیر گفت تا از کشتن قلام در نگذری حکایت باز نگویم. خلیفه از خون قلام درگذشت. هویت و جعفر گفت در مصر ملکی بود خداوند دهش و داد وزیر دانشمندی داشت و او را دو پسر بود که مهین را شمس‌الدین و کهین را نورالدین نام بودی چون وزیر درگذشت ملک محزون شد و پسران او را بخواست خلعت شایسته در خور هر یک داده گفت غم مخورید که شما در نزد من رتبت پدر خود را دارید پسران وزیر خورسند شدند و زمین ببوسیدند پس هر کدام هفته ای شغل وزارت همی گذاشت چون ملک به سفر می رفت یکی از ایشان را با خود می برد شبی که در بامداد آن شب ملک خست سفر داشت و نوبت رفتن با دین بود دو برادر با یکدیگر به حدیث اندر نشسته از هر سو سخن میراندند. تا اینکه دین با برادر کهتر گفت همی خواهم که هر دو در یک شب زن بگیریم و اگر خدای تعالی بخواهد به یک شب آبستان شوند و به یک شب زن تو پسری و زن من دختری بزایند دختن را به پسر کابین کنیم. نوردین گفت به مهر دختر چه خواهی گرفتن؟ شمسدین گفت سه هزار دینار زر و سه باق و سه مزرعه خواهم گرفت. نوردین گفت تو باید دختر خود را به رایگان دهی و مهر از من نستانی؟ زیرا که من و تو در وزارت در یک پایه و رتبتیم و پسر من از دختر تو بسی برتر است و نام نیک پدران با پسر زنده میماند. شاید قصد تو این باشد که دختر به پسر من ندهی که پیشینیان گفتند اگر خواهی که با کسی معامله نکنی به کالای خود قیمت گران بنه شمسدین گفت تو را کم خیرت می بینم که پسر خیش از دختر من برتر دانی و خیشتند با من به رتبت یکسان شماری و نمیدانی که من تو را به مهربانی به وزارت درآوردم و قصد من این بوده است که یار شاطر باشی نبار خاطر اکنون که این سخن گفتی هرگز دختر به پسر تو عقد نکنم هرچند دور رو گوهر به خروار دهی و هرگاه مرا سفر در پیش نبودی دانستی که با تو چسان کردمی ولی پس از آن که از سفر بازگردم با تو مکافات این سخن بکنم دین اینها بشنید به خشم اندر شد ولی پوشیده داشت تا اینکه شمس شمسدین با ملک برفتند و نوردین خرجینی را پر از زر و در و گوهر کرده سخنان برادر را که چسان خود را برتر داشته و نورالدین را پستر انگاشته به خاطر آورد و این بیت برخاند اینجا نه هشمت است مراو و نه نعمت است جایی روم که حشمت و نعمت بود مرا اسب بخواست خادم برفت و اسبی زین کرده بیاورد نورالدین خرجین به قرپوس زین انداخته بر اسب نشست و گفت کسی با من آمدن لازم نیست زیرا که بیرون شهر برای تفرج می روم پس توشه کمی برداشته از مصر راه بیابان گرفت و همی رفت تا به شهر بلبیس رسید و از اسب به زیر آمده خوردنی بخورد و شبی براسود پس از آن توشه برداشته از شهر بیرون شد و همی رفت تا به شهر قدس رسید از اسب به زیر آمده براسود خوردنی بخورد و سخنان برادر همچنان به خشم اندر بود پس آن شب در آنجا بخفت امداد سوار گشت همی راند تا به حلب رسید به کاروانسرایی فرود آمد سه روز در آنجا براسود. دگر باره بر باره بنشست و از شهر به در آمد و نمیدانست به کدام سو رود سرگشته همی رفت تا به بصره رسید به کاروانسرایی فرود آمد خرجین از اسب بگرفت سجاده به یکی از مکانهای نظیف کاروانسرا گسترده بنشست و اسب را با زین زرین و مرسع به دربان کاروانسرا سپرده گفت اسب بگردان او نیز اسب گردانید اتفاقا وزیر بسره در منظری قصر خود نشسته بود چشمش به اسب افتاد و زین و لگام گران قیمت او را بدید گمان کرد اسب وزیری از وزرا یا ملکی از ملوک است. در حال خادم کاروانسرا را بخواست و از صاحب اسب باز پرسید. خادم گفت خداوند اسب پسر 18 ساله نیکو است و از محتشم زادگان بازرگانان است. وزیر چون این بشنید برخواسته سوار شد و به کاروانسرا بیامد. نوردین دید که وزیر بدین دین سومی آید بر پای خواست پیش آمده سلام کرد وزیر از اسب به زیر آمده نوردین را در بقل گرفت پس خود بنشست و او را نیز به پهلوی خود بنشاند و گفت ای فرزند از کجا و چرا آمده ای؟ نوردین گفت از مصر می و پدرم وزیر مصر بود در گذشت پس آنچه در میان خود و برادر گذشته بود، بیان کرد و گفت اکنون قصد بازگشتن ندارم، به شهرهای دور سفر خواهم کرد. چون وزیر سخنان نورالدین بشنید، گفت ای فرزند از پی هوا و هوس مرو در حلاک خیشتن مکوش. نوردین سر به زیر انداخته هیچ نگفت. آنگاه وزیر بخواست نورالدین را به خانه خیش برد و در محل نیکو جای داد و گفت ای فرزند مرا پایان عمر است و از فرزند نرینه بی‌نصیبم دختری دارم که در نکویی و شمایل تو را همیماند بزرگان او را خواستگاری کردند من ندادم ولی مهر تو اندر دلم جای گرفته میخواهم که دختر به تو کابین کنم. اگر دعوتم را اجابت خواهی کرد، پیش ملک رفته بگویم، پسر برادرم از مصر آمده. تو او را به جای من وزیر خود گردان که من پیر گشتم. نوردین چون این بشنید سر به زیر افکنده گفت، آری. وزیر شاد شد، و بزرگان دولت و خردمندان بازرگانان را دعوت کرده با ایشان گفت که برادرم در مصر وزیر بود دو پسر داشت و مرا چنان که دانید جز دختری نیست و برادرم با من پیمان بسته بود که من دختر خیش به یکی از پسران او دهم. اکنون برادرم دانسته که دختر در خور شوهر است پسر خود پیش من فرستاده من نیز میخواهم که دختر به او کابین کنم. رأی شما در این کار چیست؟ همگی رأی وزیر پسندیدند و شربت خورده گلاب بیافشندند و از مجلس پراکنده گشتند. آنگاه وزیر به نوردین خلعت فاخر پوشانده به گرمابش فرستاد. چون از گرمابه به درامد به پیش وزیر شد، دست وزیر را ببوسید و وزیر نیز جبین او را بوسه داد که سبد اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.